حشتکار برای یادگیری زبانهای خارجی بسیاری از مردم از خود میپرسند که آیا واقعا امکان پذیر است که در بزرگسالی به زبان دیگری مسلط شوند؟ به نظر میرسد غیرکن است زیرا بسیاری از مردم در حال حاضر در این هدف شکست خوردن. برخی از افراد حتی زبان آموزا را با گفتن ما نباید سعی کنیم چرا که نمی موفق شویم در سرد میکن؟ بله، ما میتوانیم. ما فقط باید ثابت قدم باشیم و زبان را هر روز مطالعه کنیم. انگلیسی من بسیار بهتر شده است چرا که من تقریبا هر روز صحبت می کنم، گوش می دهم، می خانم و می نویسم. اما اگر من یک روز را دست بدهم احساس نمی کنم که شکست خوردم. هر روز یک فرصت جدید برای مطالعه بیشتر است. شما چگونه فارسی مطالعه می کنید؟ روش شما چیست؟